سبحان الله الله الرحمن الله تفسیر و چون بحث ها در چند روز گذشت از شد که در این 100 فردایی سال اخیر در بحث های حسودی شیعه اون بحثی روی که در حکمت و عنوان اعتبارات ماهیت یعنی اسامات ماهیت مدرخ کردن این رو کشیدن به بحث مطلب و از شد که در کلمات عدم همین سلزم لاب شرط رو به شرط لاب شرط شه لیکن بعد ها مثلا مثلا هم رو آخون در اصفا در جنده دو سفه 19 یه لاب شرط دیگر اضافه کرد که شد لاب شرط مخسمی در مقابل لاب شرط قسمی که به اصطلاح ما شد چهار تا لا اصطلاح لاب شرط مخسمی وانوان مخسم بود و سه تا قسمشن لاب شرط قسمی به شرط لاب شرط شه که مثال حساب مثالیم دیروز خیر دیروز در یکی از نماز دخترینی که یکی از چون یکی از نمازهای دیگری خاطر یکی از نمازهای دیگری که یکی از نمازهای که مثلا اگر فرض ما ماهیت رو منهیطی لاواشرط محض این ماهیت منهیطی در ضمن لاواشرط جسمی ماز لاواشرط این لاواطی به شرطی اون ماهیت منهیطی در همه هست دیگه در خارج اون ماهیت یک لازم. اگر یک ما ماهیت ما را خارج نیست هر خریه این به روزی رو اشاره کرد ما در وجود خارجی نیست. در وجود خارجی آفرین، تند سویدی یا سیاری یا سویدی در وجود خارجی چیم توده؟ این انتصابات این بر لهزو ماهیت گرفتن نه بر لهزو وجود. ما در خارج مطلق باید در خارج وجود داشته باشیم. یعنی من کاملاً مطلق هستم. من در خارج. دیوید لحنی شمین کلمات اسم و فعل صحبت. شما اسم کداست رو این کلمات و یک خصوصیت فعل، کلمات و یک خصوصیت کلمه کلمات و یک خصوصیت. در چیزی به معنای نداریم که نه از نه نداره که شرطه به شرطه لزوما شرطه ما هستند درست ولی ما در خارچ داریم یعنی ما هر انسان مثلا انسان در خارج داریم. من الان بحث مطلب نکردم این بحث در فلسفه شده بعد آین اصولیه متاخر متأخر توی حالا اول بحث تمام بعد اون ما که اون بحث دیگه اینه که این بحث مطلق که در اصول هست و اون لا شرط و شرطش اینه که صادر یا معقوله ضرب چه اون بحث دیگری در معارفه ما تو بحث با هم نذرا یه بحثی لكن در اونجا اینطور گفتند من کار به انطباق و بحث شد که همین نحوه تقسیم هم در کلماته مثل مرحوم نایینی آمد لیکن ارز کردم مرحوم محقق اصفهانی این رو تقریبا به یک معنای با پنج عنوان درست کردن یه عنوانی هم بین بی نهنابین اضافه کردن و اون عنوان ماهیت محمله یا مهمه یا ماهیت من هیسوریهیه یا ماهیت به نظر لازاتها و ذاتی آزاب تربیری شد رضای ایشون اومدن گفتنی که یه ماهیت رو به نظر الازات و ذاتی احتمال نظر میکنی فقط نظرمون به ذات و ذاتی یاد. این رو دست ماهیت محمده یا حالا به تأبیلی هم مبهم نکداشت یه دفعه این رو می میکنیم به لغازاتی که هست که میشه لاب شرک و بشرت شهی رو به شرط لا و قبل از این تقسیم هم ماهیت باید مبدع تقسیم رو قرار بگیر اون لاب پس چاپنگ عنوان به اصطلاحیشان دستر اصطلاح من عنوان میکنم تخصیب یکی ماهیت من حیط به اعتبار به نظر اینا ذات ها،, ها یکی به عنوان اینکی میخواد مقسم واقع بشه به اعتباراتی به که داره در مقسم که وارد شد در اخسام هم لا به شرط است و به شرط بشه یا این خلاص حرف مروم آشان راست اینه البته خودی ایشان نوشتن که این جور تردیب در کلمات خیلی حتی اهل فرح هم نیامده راست میگه بیشون این نظرم وارد خود و ایشانه که این بگیم تردیب اینجورا تردیبیشون هم واضح شد دیگه شما ماهیت رو فقط به ذات این نگاه میکنین گاهی میخواید که اعتبار بگیریم برش مثلا اعتبار بکنین که آیا این وجود برش هست یا قبل از این بگیم لاو شرط به لحاظ وجود یک نگاهی می بشیم برای این قسمان. این نگاه لاو شرط میه. وقتی به تقسیم شد یا نسبت وجود اطلاق داره میخواد باشه میخواد نباشه بشیم لاو شرط رسمی نسبت فرصیم مثلا به عدم میگیم به شرط لحاظ نسبت فرصیم به وحدت میگیم به شرط شیه این مثلا پس بنابراین شما در این که در نظر میگیرم چه وجود را تساهل عرض کنم پس همان مثال اولی یه دفعه ذات اربعه رو در نظر میگیریم که کم شدن یک مقدار معین یا کم معینی هست بهش میگن چهار یه دفعه تقسیم بکنیم وقتی میخوایم تقسیم بکنیم یک نظر دیگری به اربعه می کنیم به عنوان مبدا رسمان تقسیم وقتی این تقسیم اینجوری میشه یه اربعه به لحاظ وجود و عدم به شرط به لحاظ زوجی به شرط نه از ذات خود عربه هست نه چیز زایری باشه و به لحاظ ذات خود عربه هست. و حقیقت عربه هست به لحاظ فردیت هم به شرط ناست این است که مرمومه بباشن جد محفظه اسفانی هست و فردش با مشهور کلمات اهل معبود هم ارض کرده نه آقای گروه جردی اصلا این تخصیم نهی بود ایشون لاغو شرط مخصر سارتا رو بگیشون وقت کاری که کردار گروه جردی گفت این تخصیم به لحاظه قابلیت نداره ولی لذا لحاظ اصلا مخصم میشه خود ماهیت مخصم نمیشه اگر این تعبیر لحاظ نبود که ما بیشان نصفت چون آمده این عبارتیشان آمده بیشان تعبیر داره که لحاظ خود لحاظ مخ این یک مطلب من در دست بودشته توضیح دادم که مرحوم و استاد هم نظر موالکشون به کلمات این استاد بزرگوار مرحوم آی اسفانی هست چون گای یک مطلب رو خون مراجعه میکنم و بعد کم روزی بشه بشه باید دیشتر مرتبه بیاتر کلمات استاد رو نگاه بکنیم دیدم مطلب همینه یعنی همونطور که من تو ذهنم بود اما اونی که در تقریر آمده خیلی و عیوغری کنیم فکر ما مغرر همونم هم چشتو بایی بکنیم ایشون در اونجا پرموندن الماهیت و در همین صفحه 344 طلاح از به ماهیه این همه هم هر چیزی که مقومه اسفانی پرموندن به تقریر ایشون به نظر الازات ها و ها. این یکی این روش این است که ماهیت محمله و ملهمه. بعد نوشان لا قرات الا یلا از معها شیء خارج الا یلا از معها شیء خارج از مقام ذات او ذاتیات او لحاظ خارج میکنه از ذات و ذالک شی عنوان عنوان مخصمیه الاحصام تالیه سمیت ماهیت لا بشرت مخصمی و امکان داره کشیه و خارج عنوان تجردها، ها سیوه آئل عرض از جمیه و کسوسی ها در عوادست همیرها ماهیه به ماهیت المجرده البته این ماهیت مجرده استلاحیستی در منظومه هم داره در منظومه مطلقه هستان مخلوطه اتون مجرده مرادشون از مطلق لادو شرطه مرادشون از مخلوط به شرطشهیه مرادشون از مجرده به شرط لاست این که در انقصام دو ماهیاتون مطلقتون مخلوطتون مجرده مطلقه مرادشون لا به شرطه مرادشون به شرط شیعه مجرده مرادشون مرادشون لا به شرط لاست این حالا استلاحیشون بل وحی بهادر عنوان خیلو و امکان داره کشه خصوصیت من خصوصیات خارجی سومیت ماهیه به بلماهیات ماهیت مخلوطه و فر الاسطلاح به ماهیت به شرط شیشون خصوصیات خارج گرفت مخلوطه و به شرط شیش و ها دهیل خصوصی اطفالتن و و اخرى عدمیه بعد از ایشون داره که نه هم قد یعبر عنه بسم الثانی فی الاسور به ماهیت به شرط لاله که نه هم مجرد اصطلاح بله و امکان داره کشه عنوان الاطلاق و الارسال سم یدهاد این ماهیه به ماهیت لا بشرت به قسمی رو من که سرزنده اونو آن فرشون خودشون مطالعه بفر باشیدید شما یاد در دردتشون در در در نشدید یعنی خیلی عجیبیشون تقسیم کردن اول اینجوری تقسیم کردن یا ماهیت مهمه و محمله است که نظر به ذات و ذاتیاتشه یا اگر نیست یه چیزی خارج از مقام ذات ترجمه خارج مقام که هر مرموم های گروزهی رنید که لحاظ میشه خارج از مقام ذات رزاتی و حالا که خارج از مقام باز این به چهار قسم میشه لا به شرط مختمی به شرط به شرط لا و لا به شرط <تصفح> من که واقعا نفهم که آرام دفرمن برد مراجعه کنه؟ من که به هیچ رد محطفه داشتم البته واقعا چند روزی ما این حرف رو گفتیم هم برای سال نکی رو مونکر در قرم رو مشکل داره هم روزی هم برای این وقتی که خود تلف این حرف باشه. شد این کیف ما خان. مسئله که ایشان فرمودن که به هیچ اصطلاع جورتشون بیم ماهیت مبهنه رو ایشون میگن که ما خواهیم تقسیم بکنیم باز میشه یا ماهیت محسنی یا به شرطی شعی یا به شرط لا یا لا به شرط قسمی یه شبیلی لا به شرط قسمی و محسنی و مقابل هم دیگه قرار دادن نمید مگر یک چیز دیگری در ذهن مبارک ایشان یا اون قرار بوده, بوده بود. من که یکی سردن نمید آن سردن بردن بر مخلی رو برانو کن که مرمومه آیا شما سن داره داره این پنج عنوان رو اما اینجور نه ایشون یه تارتن اون خرام لحاظ بکنیم چون مقام لحاظ لابشرت مخصمی تو مقام لحاظ لابشرت وقتی که لحاظ کردیم تارتا لحاظ میکنیم به, به اصطلاح نگاه میکنیم بینیم که برای او فرقی نمی مثلا لحاظ وجود وجود برای ماهیت وجود عدم اشتباه میشیم لابشرت هستیم. یا نه اصلا لازم الالتحاق رو کردیم حتما از او جدا نمیشه از ذاتو مثلا است. یا هیچ وقت بود. ارتباط نداره اصلا از او هیچ در هیچ مرحله ارتباط اون نداره نصف فردیت داره هر وقت خب این خیلی روشنه تقسیم بندی رو اما اینکه ماهیت مبهمه چهار جوره لاوجه شرطی و به شرطی و شرط لا قسمی این خیلی هر بعجیبیه لاوجه شرطی و در مقابل لاوجه شرطی محض باشه این تو فکر نمیکنم قابل مراجعه کردن دا داشت. این راجعه به این رسمت و بعدم عرض شد که اصولا این بحثیه بحثه حالا اگر گرده تقریبا شبیه هم به منزله باز بحث بد نبود اصلا بحث مطلق و مقیدی هیچ این بحث در این ماهیات ماهیت و وجود و ذات زاد و ذاتیات و اصلا این بحث مطرح اصلا هیچ این بحث ما توضیحات کافی را از کردیم گاهی اوقات مطلق و مقیدی خودشون در محروم لغویشون اینطوره مثل موسکر در لغت عرب و خم اصلا اصطلاح مطلق و مقاید در اصطلاح اصولی غیر از اصطلاح یعنی غیر از اون اصطلاح لغویشون هست ببین؟ مثلا بگن موسکر مطلق و خم رو شد همه چون زنزون هست که مطلق و مقاید مثل رقب و رقب مؤمنه نه همیشه این نیست. اون یه مثالشه پس گاهی مطلق و مقاید معنوی هستند مثل موسکر و حضر لفظ موسکر در لغت عرب برای این معنو رس شده لفظ خند برای موسکر با یه خیل سمانه برای موسکری که از آب و انگور بیرسه شده این بشه من خل. پس گاهی اوقات مطلق و مقاید اینجوری هست گاهی اوقات مطلق و مقاید هم مثال مشهور هست رقبه و رقبه رقب مومنه گاهی باید مطلق و مقید اصلا به لحاظ احواله مثل اکرم زیده چی مخواد سفر باشه چه هزر باشه چه خواب باشه چه بیدار باشه این اصلا مطلق لغوی نیست زید مطلق لغوی نیست پس یک اصطلاح اصولی است. در از و در این اصطلاح اصولی در برزی از مصطلحات به لحاظ تصوره مثل اعتقرار دارم به لحاظ تصدیریه مدون تصدیریه تنین حکم و از کن نظر و اصولیها اجمالاً ها بیشتر اون حکمه اگر هم در لب درقه به بحثی هم به بحثی هم حکمی این چه رفتی مایت مطلعا و مجرده و مخلوطه و هایی نفر خوزه این رفتی به این بحث نداره مضافن به که تخصیل میرن که از توستا سر که سر در این یک مطلب دیگه بیشترین صحبت نکنه اونچون فیلی فارد از جمله مقدماتی که مرغوم نایمی جزو مقدمات قرار دادن این بحثیست که ایشان مستح کردن که, که نصفت بین اطلاق و تقیید تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است یعنی به عبارت خخرا جریان و اصولی مصطلح چیزی است که نسبت به مفاهیم دیگه اوسع دائرته نه به حساب حالات و اَضوار و ادوار اما مثلا فرض نظر به اون حالات و ادوار و انواع به حسب لغت نداره این مطلقه. اگر می چون شما بچه میشه حسن وقتی اسم بچه باشه حسن نظر ای حسن مسافر باشه مسافر نباشه خواب باشه دیوار شما نظرتون به ذات بچه هست. این اسمش مطلق پس اصلا نکته نظر مطلق ذکر مطلق به لحاظ آم چون در آم به لحاظ ورد نظر داره اینجا نظر داره <تصفيق> یک کلمه رغبه به لحاظ ورد نظر نداره این رغبه مؤمن باشه کافل باشه آدل باشه فاصل باشه سنی باشه شیعه باشه رغبه رغبه است این توش نفاقیده دقیق و لذا هم اگر تغییر کن انصافا تقیید بود و مجازیت نمیشه یک ازن به همین جهت بحث مستر کرد انصافا نمیشه موسکر موسکر یعنی سکرابر گفت مراد من خم رو خیلیم بازم موسکر مرادشم خم باشه بازم موسکر چه کنم بازم باید چقدر یک برده آزابتون باید گفت مراد من برده مؤمنه رو خیلیم برده مؤمنم برده هم در بحث نگاه میکنن هم به چون ما دلع علا شایعه پس ما اصلا اطلاق بیشتر از که ایشون تنور کردن بیشتر مراد اصولی در مقاومت محض تشریعی که گفتن استعمال و اولشو اما در مقاومت تطبیق هم میاد پس مر بحث اصلا ریشه بحث اینه که در مطلب به خصوصیات نظر نداره اما لفظ اونها رو شامل میشه چرا؟ چون به خود ماهیت این ماهیت شاملت هم خصوصه خوش. وقتی گفت زید رو اکرام بکن لفظ زید نظر نداره زید خواب زید بیدان زید مسافه زید زید رو نظر به خصوصیات نداره اما خصوصیات در میان لفظ نظر نداره چرا؟ چون لحظ نظرش به ماهیت ماهیت قابل تا امتباق به همین را داره چون این ماهیت در مقام امتصال اصلا در بحث اقتبارت و خانمی مقام مقام امتصال و ایجاده هر برده ای رو فاسق، مؤمن، عالم جاهل، مشهد، مقلد هر جو باشه اکرام بکنه کافی اعتاق بکنه کافی. حالا بعد دیگه مراد جدیه من رقبه برده مؤمن بکنه برده مؤمن برده است. سه گفتی برده آزاد کن بعد گفتی برده رضا موجه مجازیت یعنی کلمه برده بدونید چی شده منشه اشتباه میگن برده و همه اطلاق میشه چون اطلاق میشه پس ورده نه ورده نشده ورده شده به اضاق ماهیت ماهیت قابل انتباق برده شده این کل بحث بحث اصول چرا توی محلوطه و مجرده و مطلده و لابشه و تقسی و محلوطه این لفتی با اون بحث نداره اصلا. حالا بگیم تنظیرن یه چیزی بلا رفت اصلا بحثی با اون بحث ها کلا نداره ولذا بحث مطلق تو اعلان هم میاد افرام زیده از اون مطلب هم میاد لیکن توی اعلان به لحاظ اخوار و حالا توی مطلب مجرد محنوی هم مقید محنوی هم میاد مثل خم راموس که وقتی گفلار تشغل مسکر گفلار تشغل خمد خمد یک مسکر خواسته که از انگوز گرسه شد اسمش خمده یکی مطلب، یکی مغیر و یک نکته تفسیر بود که این رو میخواستم بدن یک نکته هم که اساس کاره اون حمل مطلب برمایده اون اساس بحث اصولی ما در نقیقه در آن در مبادی تصوری بحث مطلب اصولی مسئله یک اساسی مطلب حمل مطلق بر مثلا اگه اگر تشربه موسکر بعد گوله ها تشربه خرد آیا مطلق حمل برمقید میشه بگیم بقیه موسکرها جایده خصوص خرم خرام مطلق رو تقییم یا نه هر دو ثابت هست خرم بر حرام و موسکرم مطلقا مرم پس مسئله اساسی در بحث مطلق همون بحث مسئله حمله مطلع برمقیه در دیگهش مبادی تصوری هست مثلا این بحث ها تحریف مطلع چیه چند قسمه بود نه همه شما بودی تصوری هست روشه؟ ما بحثمون اینه که این بحث هیچ ربطی ماهیت و این قسمات ماهیت و اصلا با حقیقیت اعتباریست اصلا ربطی بود برای اون بحثمون بلکل اجزنیه اون عالم دیگر ایست ما عالم دیگر اصلا ما در بحث مطلع مفاهیمی داریم عناوین داریم که اصلا ماهیت ندارن اعتباری صرفن چهر اعتب اصلا شو بی‌اثر فقط می‌دونه ماهیت بگیم مراد از ماهیت اعم از اینا مش ماهیت اعتباری صرف یکی اعتباری می‌کونی که نمی‌کنه یکی میگه این زوجیت جهاست کی نیست این اصلا اعتباری صرفه پس این بحث بین بی انقسامات ماهیت و اعتبارات ماهیت و این که کلاً آن متعارض شده نداره این یک بحث بحث دیگری که باز در اینجا دو عنوان باز در حقیقه جزو مبادیه بله خب شب شب خب خروج استضاعه میشه اصولی نه همین استضاعه خروجی میشه تو خب نگرم همینه اگه به اکرم زیدن اگه به اکرم زیدن که فلویز بس مطلب چون اکتم زیدن اول مطلق بود در همه حالا دوم قوم بگه که خونه آمد چیز آیا اون مطلق همه رو مقهد میشه اگر گفت اکتم زیدن بردو اکتم زیدن, بر زیدن جمعه این هم برزن همه مطلق چون اول گفت زیدن مطلق اکتم میکن بردو بر بود جمعه اکتم میکن یا زید زید شو. قید حیدی حیدی خب میشه مدیود تصدیقی عرض کردم بحث بیشتر در اینجا در مدیود اصلا تحنیم مسئله اصلا تحنی خوب نداره چه محقیل اصباکی چه محقی دایی هیچ که بایش درستیم چه لا شرط و به شرطیج. اصلا یه اصطلاح اصولی معین حد و حدود رد اون اواله تازه ترحیل هم میخوره فقط رو برد میده تصورت مطلق تصدیفی هستم تصوری نیست اگر میکنی و شهبیه چه شما وقتی گوه اکتمیزی ده روز بعد گوه اکتمیزی ده این شما این گم چیا میدونم زید که معنا نمبر بشه لذا آزی یک توجیه کردن که زیدم بشه مثلا بگه وقتی لفظ زیده ورز کرد ورز کرد در یه زید با جمعی حالا دید جمعه و شنبه خیلی ها بزاره بیمه زید که میدونم جوز علام شخصی هست. اما تو بحث مطلق اصولی میاد. به لحاظ تصدیق به لحاظ حکم اصلا بحث ما توی اصول یک قسمتش برمیگرده به ماهیت رو تصوری. میشه اینکه مسئلهش برمیگرده به منطق ما در اصول یک بحث داریم در اصطلاح معتزل و معقول چیز بحثیه. تازه چیز میشه تغییر بشه. خود ماده هیاتش میشه تغییر بشه. من در فرقه مثلا موعله موعله ولی یک اون اکرام یا اکرم زیدن به عطا درهم مطلق اکرام مراد نیست در اکرام مثلا اکرم زیدن به انسلم علیک اکرامش کن به اینکه سلام بودن اکرم زیدن به انتوازیه و درهمن اینجا اکرام تقیید کرده ما سابقا از کردیم این اکرم زیدن این هرش قابل آبل تقییده هم زیدش هم اکرامش هم حیعتش از از این میگه خود اکرام میشه تقییم بکنه نه درست درست. خود حیاتی میشه بکنه میشه اصلا اصلا که ما در اصول دیدیم هم موضوع میشه مطلق بشه هم میشه به اصلاح متعلق مطلق بشه. هم حکم. اصلا رو آزیا هم تو حکم مفاده حیات قبول نمی کنیم چون حیات قبول البته من یک اشاره‌ایام واسه معنی ایشام می‌کنه روشن من این همه دارم بحث میکنم که این اصطلاح و اصولی اصلا کلاً ماهیت هم اون بحث یه به شرط و لا به شرط کلاً خارج می‌کنه دیگری از اونجا عالم دیگه‌ای نباد اون بحث‌ها دیگه اینجا میورده سرعتی اون بحث‌ها نداره این یه قسمه یکی از مقدماتی که حتی منو مرحوم نایمی اصرار دارن. البته غیر از مرحوم نایمی هم قبول آقا اون دیگر کردن که نسبت بین اطلاق و تقییر تقابلشون تقابل عدم و ملکه یعنی تقابل عدم و ملکه مرادشون اینه که اینها در جایی که قابلیت احده همه باشه دیگری متصوره اگر این قابل تقییر و الا اطلاق هم متصوره یعنی ما در جایی میتونیم اطلاق تمثل هم کنیم که تغییرش معقول باشه وقتی تغییرش معقول نباشه اطلاقش هم معقول نیست مرحبه نایین رو تو مقدمات بحث داردن آه کوی در زیل مقدمه اول از مقدمات حکمت بردن به جای هم تو مقدمات بردن حالا حال جای بحثش خیلی اهمیت ندارد من اجرای این مثال عرفی رو زم اصلا آب بیان بگیم بین آب اطلاق داره آب کرایین ریخ هم شامل میشه بگم داری اینجور <تصحیح> اطلاق اینجور نداره چون میتونست توی آب کرایین ریخ بیان وقتی تغییر نمی معیاره در اطلاق و تقیید اینه اگر تقیید ممکن بود اطلاق هم ممکنه اگه ممکن نبود دیگه اطلاق هم ممکن نیست و این نکته رو برای این جهت روشن شد شما ببینید اگر جایی تقیید ممکنه بگیم دلیل اطلاق داره اطلاق به تماس اما اگه تقیید ممکن نیست اون وقت ایناگه اطلاق ممکن نیست وقتی تقیید ممکن نبود چرا ممکنه انصراف ساده؟ انصراف نداره بگیم کلام ایشان اصلاح داره، آب و آب کره می‌ری. انصراف نیست، اصلا اصلاحی نداره. چرا؟ فر اگر بگم آبرو کره می‌ری خیا، نمی‌توسی مثلا اگر میگفت که بگیم کلام ایشان اصلاح داره، اکبر زیدان. چرا مثلا در مثلا روز هشتم هفته باشه که وجود خارج خارجه روز 8 باشه. روز هشتم که اصلا وجود نداره. میتونست رو گروزه هشتم هسته اکرامش رو اطلاق در جای این معقوله که تدریب معقول باشه مثل عدم و بسر مثل اما و بسر به دیوار نمیگن اما بسیر که نمیگن اما نمیگه چون اما و بسر در محل قابله که انسانه البته در محل قابل بین ها در, در محل قابل نسبتشون نسبت سلب و ایجاب میشه تنابا. یعنی وجود همه و بسر در انسان اهده همه هست اما در دیوانیشون میشه نیست در محل قابل نسبتشون سلب و ایجاب. این بحثی بوده که ادهه از احلام مفرق حالا این بحث چی بود اصلش چی بود ریشه این بحث چی بود اصلا بحثم در همون اطلاقه به اصطلاح به معنای مدلول تصدیقی بود از کلم سابقا در بحث تعبدی و توسلی این بحث گذشت بحثی که از همون صدر اول این از اول دوم این بحث مثل شد اده از اعمال تعبدی هستن اده از اعمال توسلی هستن قصد قربت در معتبر است در اده این معتول وقت اینا آمادن یک بحث دیگری هم مثل کردن اگر ما در یک مطلبی شفت بکنیم تعبودی و توسطلی چیه نتیجه در اهل اهلستان این بحث آمده در اصولشون آمده اونا مشهور بین علمه گفتن به اخلاق تمثل کنه نتیجه میشه تعبود توسطلی چون غیر زده به تعبودی یا نه غیر زده به توسطلی میشه توسطلی مثلا رد سلام واجبه اینطور نیست رد سلام واجه اگر شک کردیم رد سلام واجه رو تعبدیست یا و اداخویی ایتون به تحییط هست میکنیم شک کردیم اینا با در گفتن ترسل کن کنیم به اطلاق داریم و در نتیجه قائد میشیم به ترسلیم یعنی میگیم در لسانده نگو تو که اگر سلام رد و سلام واجبون به قصد غربه چوش قصد غربه دیره امتصال از عمر الله اگر شک کردیم این قید هست یا نه چون این قید نیامده تنسل به اطلاق دریم میکنیم و طبق اطلاق دریم حق به تنسلیت این یه بحث یه بحثم خب آزتن این بیکن بحثتر بحثتر خب. که حالا اگر تنسل کردیم غیر از اطلاق راه دیگه بیر کردیم به لحاظ اصلا این درماغ ها نیست مثلا تنسل کردن به اصل عملی اصل عملی هم که مشهور بشتم از کردن اصل اصل براعتن قید قصد قربت شکل میکنیم قصد قربت واجب هستی نه اصل اصل شده میشه پس بنابراین در شک در بین تربودی و ترسلی دو تا اصل بناش رو جاری بشه اول اصل لفظی اسمش اصل اصل اطلاق دوم اصل عملی طبق اصل اصل اطلاق خوک میکنیم به ترسلی دوم اصل عملی اصالت البراعت طبق اساس رو براهم حکم میکنیم به توسلی روشن شد. شد شکل میکنیم قصد غربت معتبر یا نه اصل براعت از اعتبار قصد غربت این بحثی بوده که در اصول مطرح شد روشن شد حرف آیان بعدی این بود مرغم نایمی و ادهی قبل از ایشان بعد از ایشان از در جای دیگر هم بحث شد یعنی بحثی دیگه هم مطرح شد این بحثشون این شد که مرموم نایینگوهاستن بگه این اصل لحظی جاری نمیشه اصالات الاطلاق جاری نمیشه <تصفيق> ولو لسان در اینه که رد و سلام و عجبون. توش نداده به قصد قربن لیکن اصالات الاطلاق جاری نمیشه جای اصالات الاطلاق می. حالا این نقطیش چیه؟ چرا؟ و شبیه این مطلب در عبارت قبل از دانیم آمده اما مرحوم نایین کمی هنچین گفت که به قول ازوزی قانون مند بشکرده کنین سرور فرمودم به این که اصولا هر حکمی دو جور انقسام داره یا موضوعش دو جور انقسام داره تقسیم بندی رو همین بود یه انقساماتی قبل از تعلق حکمه یه انقساماتی بعد از تعلق حکمه یکی این بحث خوبیه، بحث اصولی لطیفیه همه هست اسمی که گذاشتن امقسامات اولیه امقسامات سانه مثلا فرس این زید رو در نظر بگیریم این دو جور میشه فرس کرد زید عالم زید جاهل میشه تقسیم بکنه اکرامش ممکنه ده جور اکرام تقسیم بشه اکرام در روز باشه اکرام در شب باشه اکرام به پول دادن باشه اکرام به مهمانی کردن باشه احترام به خلام کردن باشه احترام به که خم بشین در مقابلش احترام بکن کبچه ها شد رو پاشی. مثلا جفت بکن اکرام انواع داره. تو بینید این انقسام وقتی درسته اکرام انواع داره زید حالات داره رقبه به اصلاح اصلاح داره تمام این انقسام ها قبل از حکمی مثلا یه وقعه مؤمنه شیعه باشه دوازده امامی باشه مثلا کنیم به این که قدش اینقدر باشه طولش اینقدر باشه ارزش اینقدر باشه اینه آداد بکن خب سیکل تا قید میتونه بزنه تمام این انقسامات قبل از جعل، قبل از بکنه یه انقساماتی بعد از بکنه مثلا ببینید شما یه خداوند متعال نماز جمعه رو واجب کرده بعد از وجوب نماز میگیم یا من میدانم به وجود یا نمیدونم خوب که خاص یا من قصد این وجوب بکنم یا نکنم یا من میدانم یا من نمیدانم. این یا میدونم یا نمیانم بعد از گفتنه قبل از گفت نیست بعد حکم بیاد یا من عالم بو میشم یا عالم بو اسم اینه ها را مرمون ناینی این انقسامات سانویه یا من قصد این حکم بکنم قصد این امر بکنم این قصد امر قصد امر چی بعد از امر نبود که قصد امر من نداریم بعد از امر آمد میتونه شاله بگه تو نماز به قصد امر بخون. چی؟ وقتی که امر آمد وقتی که امر نیامده چی قصد بکنه؟ اصلا معنا نداره دیگه قصد امر رو بکن یا قصد ام نکن نماز با قسته ام رو بخون یا نماز بدون قصد ام این انقسام اصلا محلی نداره یه. لذا مرموم ناینی اگه حرفی داره انقسامات ثانویه همیشه بعد از حکمه چون رتبشون بعد از حکمه اینا نمیشه تو مقام قبل از حکم لحاظ بشه. مثلا اینطوریه نماز نماز جمعی بخوان که عیم داری که واجب است باید اول باید واجب است و بشه این نماز جمعی که عیم داری که واجب است این تا قبل از وجوب که وجوبی نبوده چطور میشه تقییدش بخوره؟ این اشکال مرغوم نایمی پس ایشان میگه شما اگر شک در قصد قربت کردین یعنی قصد امر کردین این قصد امر بعد از امره چون بعد از امره میشه قبل از امر در متعلقش اخص بشه یعنی به عبارت دیگر اون که مورد انقسامات سانویه هست نمیشه قبل از امر اخص بشه این اشکال معروفیست از قبل از ناینی هم مطرح کردن مرغوم ناینی هم همیشه قانون مندش کرده شما قبل از عمر انقسامات اولیه رو میتونیم لحاظ بکنید. مثلا بگید اکرامی که در ساعت فلان باشه واجب بینید اکرامی که در ساعت فلان میتونید اکرامی که به بوسیدن دست باشه بینید اکرامی که زیدو در روز جمعه بینید همه اینالی میتونی تصابر بکنیم لذا اگه گفت اکرام بکنم میگیم اکرام اطلاع چون قید ممکن بود اطراق داره میخواد دوزیدن دست باشه به پولدار، دادن باشه به مهمانی کردن باشه به کبش جوخ کردن اما بگه اکرامی که می‌دانی واجبه می‌بینی؟ اجرامی که میدانی امر بهش تعلق گرفته به تو واجب میشه اکرامی که میدانی این دانستت بعد از وجوبه نمیشه قبل از وجود از بشه این اشکال معلوم ناینی امری نمازی را انجام بده که قصد امرو شکرده باشه، ها تازه امر امرو می نمازی رو انجام بده که قصد امرش کرده باشه. مروم نایین گیرم نمیشه لذا اونشه که بعد از انقساماتی که پیدا میشه، بعد از تعلق امر نمیشه در مقام متعلق امر اخذ بشه این خلاصه ای اشکال مروم نمیشه اگر تغییر ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست. این قاضر برای این می میشه تقیید بزنه به قصده ام؟ نه اطلاق به لحاظه قصده را نمیشه اگر تقیید نشد اطلاق هم دو خب این بحث چرا اصلا مطلب شد تلصده این بحث چی بود و چه نقطه درش مراعات شده بود اصل مطلب این بود این خلاصه بحث مرموم نایم. این قائزه رنگیشان به بی این مناسبت مطرح کردن من یه مثال اورپی هم مثل آب کاره نبیر بنابراین چه مثالی که من ارجعی به جل قید هستین. لزوما مرقوم نااهینی قدس به اصل لحظی که اساس الافلاقه نمی کنه. کفایه هم همینطور طور توسل نمی کنه اما در کفایه میگه به عقل عملی هم مراجعه کرد. اساس نمیشه. اساساً اشتغال جایی میشه. این بحثا در بحث تعبدی توسلی gutter ما در اونجا توضیحاتشو داریم. حق اینه که مرغوبای خوئی دو تا اشتغال جنایی میذاره نه یکی. یک اشکال آرکویی در کبراست که نسبت به تقابل اطلاق و تقیید تقابل و ملکه نیست این یک دو اشکال دیگری دارند که در مانحنفی نحنویی تقیید ممکنه ممکنه بگه واجب از پر تو نمازی بخونی که در او قصد امر اون قصد امر من هم داشته باشی این اشکال نداره چه؟ حالا این یک شرطیه که بعد از امن تحقیق میشه چه مشکل داره؟ برای در مقام اعتبار این چه مشکل داره؟ علم یک جدیه داره که چونتا خیلی طولانیه من الان متعرض نیموشم در بحث علم عده زیادی از متعفیرینه بعد از مقام نایینی فرق گذاشم به این علم به جل و مشغول از این را سعی کرده مثلا ما از سریم این دوها چارساز نیست اهمیه بحث اینه که اگر علم ترجیح صرف باشه نمیشه اگر این درش یک موضوعیت داشته باشه میشه این اجازه من خیلی مختصر گفتم تفصیلش طولانی به وقتی دیگه ان تو تو بحث‌های اشتغال اوائل بحث زن و حجیت این بحثا میاد با اونجا ان شاءالله تعرضش می‌کنیم به تفصیل باذن به الله تعالی پس بنابر این دو تا اشکال مرحوم آی خوئی میفرند یکی اینکه حالا اگر بگه پس قصد ق ام را مت نیست برای که امری بازی چه اشکال قصد ام رو شاره معتبر میکنه که این جزء نماز این جزئه ام مطلق بعد از اهن حققل چه لازم داره که تمام و قبلش باشه. و انصافاً این اشکال مع های وارده وارد به نظر ما تمام هیچ محضور نداره و اما اشکال دوم آی خویی اشکال این است که نسبت به این دو تا اطلاق و تغییر نسبتشون تقاغل عدم و ملکه نیست یه مقدار عبارت مرحوم ناینی رو آقای کوئی رو می کنیم در رد مرحوم ناینی بعد برگردیم به مطلب خرومی ایشون رو ارز در صفحه اه... سی سد و بلیم زم شست و چار باشن همون نگاه کنم ایوزم این طور در صفحه سی و شست و چار ایشون وقتی مخواد مقدمات حکمت رو به اصلاح مطرح رو این مقدمات رو اول ان یکون المتکلم متمکنن اون البیان ولی اتیان بلغی بله بعد ایشون ترمودن نه اما در زیل عبارتشون مازکر ابو شیخون الاغستاد رحمه الله من همه تقابل بینه همه بین اطلاق و تغییر، تقابل العدم و المکه، کلعه ما و البسر و نهو لابد من تروله ما تو اهما علا موضوع قابل به المکه. این ترکیفی که ایسی کاف کردن نسخه این نسخه جدید می کنن که از از از از نسخه جدید خدمتشون هست اینجا اگه بیدن احتمال میدن می یک نیمسک افتاده از عبارتیشون احتمال الا موضوع این قابل اتصاف به ملکه نمیشن لم قابل اتصاف بالعدم این هم بلا نه دارین که تزاییم کامپیوتر ها نسیم قدیم من به نظرم این چونه فل موضوع ادالن یکن قابل به بالملکه این مقدار افتاده به نظر خودم لم یکن قابل اتصاف بالعدم ایزن و کبل از ولا اجدالک لای اصفا اطلاق و لعماه لالجدار اید مثلا و ما نحنو فی من ها ذل و اما مازا کرده هوشه یکنال استاد فلا یمکنن این فعلاً یمکنن اینجا و سرنوشت نداریم شور فعلاً یمکنن المساعدت و به بمجهند و ذالکه مازا کرناهم ایران راسته یکی از مبانی مرهمه استاد اینه من ان تقابل درین هما من تقابل تعداد لال و ملکه و ان استحالت احده پس ضرورت ال آخر، اگر یکیش بستهیل شد البته ایشون هر داره امر وجودی گرفتن یک احتمال دیگه هم هست که تقابلشون تقابل سلب و ایجاب باشه ایجاب نظرقی میگه سلب و ایجاب سلب و ایجاب باشه اگر این باشه اصلاح میشه عدمی عدم تغییر میشه وجود ایشون نصال تضاد گرفت لر عدم والملکه به اند. استحالت احده ما که ضرورت الاخر اگر یکیش محال شد دیگری ضروری میشه لا استحالت هم خوب در این مسئله بین دو احلام کمال تباعد برقرار شده معروم نانیر یکی تغییر محال شد اطلاق هم محال محاله فقط تغییر محال شد اطلاق ضروریه درست اکسر بله میدونم ولی یکیشون که به تضاد در ما بله بله این همه شور بله در این که ایشان می که این تقاول البته من یک چند ست در این به ساعت نگاه کنم که وقت آن نشه چند کنس هست عبایتیشون نخوندم حالا از همونجا بخونیم بیان و ذاله که انل اطلاق این 5 6 سال قبل از این مطلبی که امروز خوندم بیان و ذاله که انل اطلاق و تقیید اول تقیید تارتن اون نوشته و تقیید تارتن یلا هست به اضافت علا واقع و مقام سعود و اخرى به اضافت الى مقام الاسلاق و الدلاله بله ایشون هم عام اول بغذکر ما غیر ما راشن انه لا واسطه بین ما صلی و نفس ال دیگه همون تقابل تضاد رو ایشون مثلا نشون چون وقت گذشته دیگه تکلیف بحث موندونه فردا ان شاء الله الله